اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آن در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است له ملک السماوات والارض یحی و وهو و هو علا قدیر مالکیت آسمان ها و زمین ازان اوست زنده می کند و می, می و او بر هر چیز داناست او الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول وآخر وپیدا وپنهان اوست و او بر هر چیز داناست هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير او كسیست كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست لهو ملک السماوات والارض والى الله ترجع الامور مالکیت آسمان ها و زمین ازان اوست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور شب را در روز می کند و روز را در شب و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد داناست آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده در آن قرار داده انفاق کنید کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند و و قد وقد قد اخدمی این كنتم چرا به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول او شما را میخواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است اگر آماده ایمان آوردنید هو الذی ينزل علی عبده آیات ليخرجكم لیخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرعوف رحیم او كسی است كه آیات روشنی بر بنداش محمد نازل میکند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور برد وخداوند نسبت به شما مهربان و است و مالکم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئی که اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا و قاتلوا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر چرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراس آسمان ها و زمین همه ازان خداست کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند یکسان نیستند آنها بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله اجر کریم. چیست که به خدا وام نیکو تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند و برای او پاداش پرارزشی است يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم <تصفيق> در روزیست است که مردان و زنان با ایمان را مینگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت میکند و به آنها به بشارت باد بر شما امروز به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان جاری است جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ است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 باطنه فيه و ظاهره من قبله العذاب روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگویند نظری به ما بیافکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم به آنها گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید در این هنگام دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد دَرونش رحمت هست و عذاب ينادونهم لكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور آنها را صدا میزنند مگر ما با شما نبودیم میگویند چرا ولی شما خود را به حلاکت افکندید و انتظار مرگ پیام بر را کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خداوند فرید داد فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کافران و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد و چه بد جایگاهیست؟ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ <تصفيق> وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ و کثیر من هم فاسقون آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قصاوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گنهکارند اعلموا ان الله يحيي ارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند ما آیات خود را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرض حسن يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه به خدا قرض الحسن دهند این قرض الحسن برای آنان مضاعف مي‌شود و پاداش پر ارزشي دارند والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم <تصفح> كسانیکه به خدا و رسولانش ایمان آوردند آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها دوزخیانند اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و له و زینه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي فی الاخره عذاب شدید و من الله ورضوان وما و, و ملحیات الدنیا الا متاع الغرور بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو میبرد، سپس خوش میشود، به بگونه ای که آن را زرد رنگ می بینی. سپس تبدیل به کاه میشود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست سابقو إلى مغفرة من ربكم و جنة كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند صاحب فضل عظیم است، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا الا في كتاب من قبل ان نذرها ان ذلك على الله يسير هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است. لکن لا تأس و فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده تاسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد الذین دخلون ومرون الناس بالبخل ومن یتول فن الله هو الغنی الحمید همانها که بخل میورزند و مردم را به بخل دعوت میکنند و هركس از این فرمان روی گردان شود به خود زیان میرساند نه به خدا چرا که خداوند بینیاز و شایسته ستایش است لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و معهم و معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و, منافع للناس و الله من ينصره و رسله بالغیب این الله قوی عزیز ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری میکند کند او را ببینند خداوند قوی و شکست ناپذیر است وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان اندو نبوت و كتاب قرار دادیم بعضی از آنها هدایت یافتند و بسیاری از آنها گنهکارند ثم قفينا على آثارهم برسلنا و قفينا و بعيسى بن مريم و آتيناهو الإنجيل وجعل وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهنانيه لتدعوا ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون سپس در پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی ابن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل کسانی که از او پیروی کردند، رعفت و رحمت قرار دادیم و رحبانیتی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم گرچه هدفشان جلب خوشنودی خدا بود، ولی حق آن را رعایت نکردند. از این رو ما بِكَثِيرٍ از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها باصقند یا ای کسانی که ایمان تقوا الله و به رسول او یعطی کم کفلین من رحمتهی و یجعل لکم نورا تمشون بی و یغفر لکم غفور رحیم ای کسانی که ایمان آورده اید تقوی الهی پیش کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید. و گناهان شما را ببخشد و خداوند و مهربان است. لَأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَلَّا يَقُدِّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و تمام فضل به دست اوست به هرکس بخواهد آن را میبخشد. و خداوند دارای فضل عظیم است.